بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الاعظمين اللهم أعظمنا جميعا مشكرين يا در بحث فرش متعرض یک مقدار اتداعا روایات شدیم بعد کلمات مرحوم شیخ حضرت صلی و صرف که یک مطلبی را از حضرت صلی و صرف انشاءالله روی تحریق در این این در جدید chape gayik شده یا شده این chape قدیم متعارف است که فوزیشن از صفحه 29 ایشان متعرض اش شدند و انصافا داستان دارلی است که خیلی سعی کردن مطالب جدید تقریبا در تمام ابواب داشته باشن خودشون فکر کردن این فکر کار خوبی مرجو مستدعا فیجشون درس خونده امروز اون روحییه را ایشان ایشون, ایشون محقق روانی جمعه رو کرده بحث و یک جا یک بارو به اسم اما یک توضیح مفصل و بعدم چند مورد دیدم که محل حاشیه بود در عباد شیخ باید کرد. ایش رو میفرمانی که کلام در غشت یقعه آفی مقامات سلاس سلاسه تسته بحث واقع میتونی اول که تحقیق موجوده. که ما گفتیم شیخ این سانی اوزود واسه چهار قسمشه باشه. از سانی فی حکمی تکلیفم که شیخ اجمالا گوه و الگش حرامون بلا خلاف جمله و روایات به یه این هم ایشون نه بحث مستفیدی هم از سانی فی حکمی و یعنی صحت معامله و فسان اما کلام فی موضوع الغش فعلا البته ایشونی که یعنی اخبار اون مقداری تا اکتاب شیخ آمده اون مقداری که ما کندیم بعضیش نه قرش محانه دیگریز قرش یعنی مثلا خریب کاری شبیه خریب کاری کردن باشد رضا در مقابل نصه النصه لعیمت المسلمین یعنی انسان واقع و لب به رو بدیه قرش یعنی قرقاتی صحبت بکنه اما این روایتی که نقومی شیخو برده اینا توی معاملات و غیر معاملاته ازن اما این قشی که ما میگیم مثلا در مشاهد خودش قش نکنه دروحون اگه یعنی مفروض صحبت نکنه لابلات صحبتها چیز دیگه باردن ایشون میگه قش در این اخبار چهار نقطه داره اینو ما توضیحات مفصلی سابقا به مناصراته متعدد ارز کردیم که ما میتونیم الفاظ رو به لحاظ مدلول تصوری هم تحلیل بکنیم ایشون میگه که چهار نکته باید باشه تا قشر را استرده بکنه یعنی مدلول تصوری رو تحلیل کنه. یکی وقت این عبارت جامعش الگشو ست رو مالا یورغ انسان پنهان بکنه اون چیزی که مرحوب نیست فی فی در اون چیزی که مرغوبه اون غیر مرغوب رو داخل بکنه در اون که مرغوبه طلبند زیاده فیل معامله پس چند شد ستر شد مایورغب شد طلبند زیاده شد معامله شد این چهار قیل چون یه قش اونید که دارای این چهار قیل باشه همالا یکون سترون که در اون هم بود اگر ستر نباشه مثلا برینجه خارجی رو با برنج داخلی مخلوب کرد نگاه بکنیم شوید بشناسی این داخلی خارجی لب یکون خشون فما لم سرون نم یکون خشون یعنی فی ما اداکان الجنسان کلاه ما ظاهره بارزین للمشتری که شعیر المنظور برخونتر از این هم درجات داره ها اصلا تفصیلات یه برنج خارجی که خیلی خوی آفش معلومه باید برنج داخلی که خیلی خوی معلومه قشت میکنه خب بله گفت اولدیرانی همون لابه تر پر هم نگاه با کنیم اما یه نفر هر داخلی ای شکل ایش ندری کنه امکنه اتا به این سنست و ماهر هم نشناسه بازم قصده بکنه این طور نیست که حتما ست باشه و نباشه تعشیر ممدود به خون چه بده؟ اول گردون و مرغ گردو با مرغ پشت مخلوط. خب هر چیزی میوونه. ولی وقتی شما برای مرغ چه تلاش براتون گیره. اینا چیزی نیست. اما اینکه فرضین مثلا مرغ درجه یک یا مرغ مثلا خارجی چون مرغ گردو بردا بادا از نمیگه اون خیلی شبیه اصلی که با داخلی مخلوط کسی نشناسه. این رو این سه تا سه تا در نه لا اتبرف ص انییت می ح طریق و معرفتی به اخبار باید و اکثر افتصا قش عارف به تید نظر در لاغرشه ان و ععرف خصوصا من شغل مورد وی خودش باید بیاان قی بیان زندگی می شود تمام اشارطوی و ایننظر عقت تو ص حالا الان مادای از هری متعارف اختبار با کار متعارف با آزمایش متعارف شناخته نشه و بله و مطارق و اختبار مختلفان فلاشی ها بله که راسته به هر حال من فکر میکنم این سری کرده این معنای دقیقی رو تحلیل بکنه و حدود بکنم باز هم گیر پیدا کردهشون که با تمام این دقتی که ما میکنیم باز یه درد مستاخوه اصالی محل کلامی محلش راسته من سمی یا من بله بله بعد فرمودن که و ها تدا و ایزن ما لم یک کنه من غیر المستور لم یک اگر خوب رو بالا گذاشه بعد رو پایین گذاشه قشون برسه بعد رو بالا گذاشه خوب رو پایین گذاشه این دیگه ایشون میگه قشونی واضحه چون اون هرچی که بعد بوده در محاول چشون برسه بعد درها لم یک کنه بعد برها. باید بل... میگه بعد متفاهم اورجین همین است بعد و ایذر معامله کنه هاذات المعامله نمی کنه که شن مخ... من بحثش نمیذارم ایشون توضیحه لم یکن غش مشمولا للاحبار اگر تو معامله نباشه غش نیست سر غش نمی کنه هر کردم در بعضی روایات اون خطبه مفصل در صد جزء بحث امری درشت معامله کیش خیر معامله خیر بسیار الو اغاث عزاپه مهمان بکنه فلو اغاث صفافی و ریاضته لبن منزوجه یک بهسا دوغی که شیری که با آب مشوبه به جای شیر مشوب بشه بعد مهمان یه این قشنگی تو معامله نیست و همچنین اوروح او اخصا او ارز اورذ روز چند جور ترفاز میشه برنیش ما رو برنیش اولاد همه ارزن ارزن هم لن که برسان البته یعنی بازم به نظر من به افراد و شما مخصوش هم به ما ما برنیش خوب خدمت رو بیرن بعد مخشوش رو شد توش تایلنگی باشه <تصفيق> این هم یک نوع کار ندرستیت و اقلی نستش فهمه بله لذا خودش هم گوه نه املوه داره ولو به فعلاً خلوص حرامه به عنوان کذ قش نیست میدم وقتی یکی میخواد یک مطلب جدی رو تازه تحسیل کنه گایو توی این تناقضا باقید دو سه ساعت بعد خودشون میگه که قشمی نفسه حرام نیست خاطر کذ حرام نیست <تصفيق> <تصفيق> در اینجایشون میگه کذ هست اما قشمی خب شیخانم موضوع بحثی گفت که قشقو نداریم گفت با قشقو عناونه نیست عناونه کزه میگه قاطکری کزه است با گفت اشکی هر حال چون من خیلی مشکل نمیاد مولانا قضیه اشغال بکنم چیزی که مثلا میگم رد میشن لکن همین فکر که ایشان سعی کرده این مطلب رو تغییر بکنه و تفسیر بکنه خیلی کار لطیفیه و ای زن مادام یکم طلبند زیاده من دم یکم بدی رضا اگر مثلا یک شیر محروس رو بخشید بیه کسی هی پولی نیست رضایش بقول قدیمی ها میگن اصل پیشکش دندناشی نمیشوند یا حساب نکنه که این اصل پیر یا جوانه چون بردندون شما رو برای عمرشه یکه دندناشی حساب نمیم کنه. حالا ترسل لبه مخشوش هم داد مشروب دادش فای ندارد او با ابو به قیمت ما به قیمت آفرو اونم بده خوری ت و آن تو شیر می‌نم. چند تو با وجود یکیشی که آب آن رو. شیر می‌ده تا آب داری. خوب نمیشه که آب آب آبی مدت زیادی می‌ده. که می‌گیره این هم هم آب که این سری شیری. نفعیه آبی داره نفعیه شیری داریم که می‌گیم چی دوست دارم میاد. خوب نمی‌نویم اطلاع می‌ده. آب به قیمت لبن ممزوج. حالا این باز بهتر شده که شیر خالص از شیر می‌دهد و شیلی که باز آوش نیش داره هزارتان فرو. خب از عنوان دیگه کل رو خارج که خاره بده. بده. خانه کل رو که خارج هم نصب الاخبار و المتیقن المصطفاد و حکومون الاخبار و قرش المجتمل علاق حبود الاروه علاقی عشر ها ظاهره اشاره نه اشاره نی ولی با این اشاره نیست ناشون در اشاره توصیح ای بدن در اشاره و امن کلامی حکم غشت تکلیفن اما این که به لحاظ تکلیفی که از فلی مرحوم شیخ به یک سهت نیم سهت فرمودن خلید یه هرولی من مجموع من الاخبار امن غشت به نفسه به عنوان لیت محرمان من محرمان خود غشت هرمن هست علاقه آقای کنگه به ایشون حمله کردن شایده ایشون که این خلاف ظاهره از مستقادر بود، وای قش و حرامه، اما چه لیکشیم برند؟ اگه نکنیم شو. این نمایه ها بونوانه نمکیز بودنم، اما خوندم دیشیم میشه. این قاشنیت لگی بونوانه کیز حرام. از این وارد میگه کاش خودش حرامیس، آنون کذب حرام. نگاش شو کذب میدونم ولی هر کیزی قاش نیست. بله، میگه گی بونوانه کیز. نه اون بالا با سوالات چرا؟ اون بالا میگه کیز ولی می. چرا؟ هر این های که با هم ملازمه نداره هر قشتی اگه کذ باشه هر قشت نیست میگه هر آمه به عنوان کذ میگه میگه این اگر به فعل نمی اکان در اخبر انالخلوص هر آمه به عنوان کذ یه قشت نیست خود قشت چیزی نیست ما خود قشت چیزی نیست خود قشت هم کذ بر هم <تصال> <:OR> آ هست من میگم نیستن. به نفسیه با عنوان ما بله به نفع ولی به حرام <تصفح> خود اینم خودش غش هست نه, نه ایشون به اما هر قشی به اونوار کژ حرام اینا هم طرفینا چه ایشون میگه حرامه به عنوان حرمتش به عنوان قش نیست، با عنوان که قش نداریم ما؟ نباشه به عنوان قش. خب ما عنوان قش نداریم. یعنی که عنوان قش نداریم. عنوان قش به نفسه حرام نیست. عنوان کذبش حرامه. خب این یعنی خودش یعنی قش از مسائل میگه. آخه عنوان قش نیست، اما کذبه. قش دروغ دروغ دروغ دروغ هست نیست. دروغ. ممنون قش نیستونه آخه چون قش الان عنوان نداره وقتی نظر نمی تونی نساله تغییر بگیری الان شما هر چی قش یعنی حالا عنوان نداره نه کلمه اهم شامل قش و غیره است قش خصوصیت نداره نه قش خصوصیت, بله. بله. خصوصیت نداره بله بله قش خصوصیت نداره یحم و بونان کلمه بله ایشون میگه به انز یحم به معنا هو اکثر للمال بالباثره این عنوان باشه ب بله. این با کز فرمون بله. این در اونجا از مال مبادله نیست. و اینگونه یه همون به ما که او اکنون از مال بلا رزاز فهریس. فکر کن اگر شو جزیی از من جزییات تصرفی ملکه ویر بلا رزاز، این نوکش می‌کند. البته بسیاری این نوکش را تصرف در ملکه غیر بلا رزاز. ولی اصل اولیش خواهد در برد. می‌آوردش نمی‌گیره. وقت قبل حس. و قنا و نه منصاح من, من اخباریه حاب به صبر اینجا سیر نمیشه یعنی نسخه بازه چا باششه این آنان که دو تون نقطه هست نه صبر سین و با و صبر اصطلاح هم یعنی تقسیم بندی کردن ابداشک شکل کردن میگه یا اینطوره یا اینطوره یا اینطور این اصلا هم صبر این اصطلاح هم یعنی. بیشتر در کتب و اصولی ها در باب خیاز آمده اگر بخویم اینو خل علت در بیاریم با صبر و تخمین مثلا بگیم خمر حرام شد چون مایعه، پس چون مایع حرام باشه. یا چون بوی کلان داره، پس چون یا چون رنگ کلان داره، پس چون اینطوریه. این اصطلاحاً این صبر میگه. صبر یعنی احسا کردن، جهات مختلف رو برام کردن. این اصطلاحاً ما ازشون صبر میگیم. به صبر بله. بله. و تأمل ايضا الولا اندال محرم ماذا کرنا البته ایشون یکیشو ای کس میدونه یک چند اکلمال به رضا صاحبه میدونه ما از کردیم اونی که مستفاده در باب فقر یعنی اونی که ما مثل افتی بود از مطلب عکس بود شرا در باب غش اکلمال به ترازی هست اصلا باب غش خارج شده به خاطر اینکه تو ترازی هست خارج شده. نه اینکه بدرالدراز حسینم به خاطر هر دم با ایشون سر زد. میگه چون عقل ما بدرالدراز صاحب داره. به عكس چون میگه آینه به تو افتم هم اینقدر همگی راضی بود دیگه تجار انرا سر می ما این توضیح دادیم که روایات غرر و روایات غرش هدف اساسیشون اینه که بلد ترازی باشه. بلکه که معذارت محافظوست نیست بلا اون ترازی باشه ترازی تنها کافی نیست نه این که شم بلا رضا صاحبه اما آیهانا ها در خلال مدل روچن میشون اما لنهو لولا اندر محرم مازه کرنا محرم شغل لبن ما بگیم همین که آب رو شیر مخلوط میکنه این هون این هرامه چون که این کار حرام است راست گفتون خودش موقع بغره با آواس رو مهمان بگیرید نخواد به احوالت ابراز داشته باشه او یکون محرم هو عرض المشوب علی بعده یا محرم این است که اونی که مشکوکه اونی که منزوجه اون عرض بکنه عرضه ذو بعده و من معلوم مجرد عرض حرام نیست حالا کسی شیر مشکوک رو آورد بشه تذکر همین که اصلا هم حرام حرام نیست از لیس مجرد الاند حرامن حتی اگر در انلم یوبه یوبه با اون موسیقی پچه بود اگر این فروشم نره فروختم نشه من ازالک این حرام باشه این چیز اینست او یکون از محرم قبول انشاء انبید بگیم انتا خود این انشاء بگیم انتا تو این خود این انشاء بگیم به اصطلاح حرامه همین خود انشاء رو ما ببینیم حرام خب اینا بله اما معلوم ان مجرد انشاء لیس به حرام اینکه انشاء که حرام نیست مثلا لونت ده دقیقه قبل از ان یقدس مثلا یه خروف بدی آمن تو اینم مثلا در در ام ده درصدش آفت از این خرس بشه او حتی منحانه یا چیزی که بکنه او امر از منتهو من الشمان او خیره هو بین الاخذ و تر فتا اینه, اینه،, اینه،, اینه،, اینه ان تو عنوانه اشه اخذ غیر مخشوش به اضاع مخشوش هزار و به اضاع این مایهی که هزار این حرامه ان یکونه اینجاست اخطر قیمت غیر مخشوش به اجاره مخشوش بله. و کانه حاله های محرمان این محرمانه. حرمت مال اینه. ازش میتونیش. بله. و کانه حاله های محرمان و هر لذت اخبار الان تحریمه اونی که اخبار بیانش حرامه اینه. بله. فکانه اخبار ادلتن الان به نظرم ادلتن باشه خوب کتاب چاب نشده این داردشون می‌فرمیست، ای جلویش چاب شده نبوده ماده ادلتن باشه ظاهر اینطوره، وقتی اینجا ایشکالی بیشی می‌ندازم میاد که خب بعد اینجا شما به عکس آیند بگیم، چون آیند تا ازشون بوده که می‌تونن حرمت در معاملات لازم حساسن، شما با اینجا نه در ویا دوستیم فصل حرمت، اینطور باشه. چون امز قیمت 1500 تا به ازای 1200 خود این کار فاسده نیتونه بگیره لازمه این که فاسد مال مرزانی شد حرمت حرمتش لازم میشه و کانات از اخبارا دلتر علال فساد دونه حرمت تقریفیه اول فساد در بعد حرمت تقریفی فه این حرمت تصرف سمن شهن و معاملت فاسده لذای ایشون در بحث حکم برزگیش هم اینجوری وارد شد پس ایشون خلافند شیف شیف حکم تکلیفی رو مسلم گیره در حکم برزگی بحث کرد ایشون حکم برزگی رو مسلم گیره در حکم تکلیفی به اشکال قرام دار که اون منذاری که حرامی اینه و این هم به خاطر فساد معامل است. این هم مطلب بیشم و ردی و صدر داره فساد به وجوه ضعیفه اشار علیه المس امدت ها ان الارد تعلق المبی با عنوان انه و غیر و مخشوش لا المبی عنوان کان فعلا الله هر غرش فعلا الله هر ان لا وجود المبی وجود سوال مبی همون ما لم یقیقا یا این وجود خارجی مبید نیست اون مبید هم که خارج نیست بعد ایشون فرواهادهیش خب حتا سریاله، فی کفیر من البروه الفقیه این ماثله در جار و قاصد شهید ورزوی شهید در باب ساعت جماعت اردو تو بحث معاملات ایشون هر هم همون کاره میکنه من ها مالو اعفا شخصا به عنوان نه هو فمیرون او هاشمیون او آلمان و هو نیست دی نوکلک در واقع عالم نیست هاشمی نیست, سقیر نیست و من حال مالو تن به شخص با عنوان ان هو زی خوار انوان این مثالاً مثلا چون مواصل از چیزی لا اول وجود که هر چه درست نیست منها بالوباء به عنوان و فرستون فبان انه هر حمار منها كل معامله و غرضی از شی بانوان عنوان انه صحیح و فبان انه معیب و خلال مواصل ایار رؤی اختیار تن و اختیار بین فاسب و بر نفسه و کلیه باب تجری چون در باب تجری نیت شی چیز و واقع چیز اصلا مایه رو با کرده به مورد شراب برمش رو آب درمان وله وله حد ایمانیت داره و خود ایشان یک توجیهی دارن چون سعی کردن یک توجیه خاصی بکنن کنن تا یک حدی یک میشه حساب کرد اما حالا اینکه به نتیجه ایشان برسیم و توضیح ایشان کافی باشه نه حالا من توضیح میدن. حالا من چون ایشان یک باب واسعی و در فقر و قول خودشون مطرح فرموزن و یک نکته فنی برای تمام اینها ذهب کرد. وله هم امدر شخص در تقدر به صلاح حمله علاوه چه کبرن کنیگه یعنی انسان وقتی احراز کبرن ما اسمشون احراز کبرن حالا یکون در تقدر صلاح هم فعتقاض و کبر این علم او، یابش و به حرکت او اعلام می‌کند که او صغرالدیل کل کبران. ما هم تو زیادی گفته ایم که تنظیم و حدیث دارند مدار اهراد کبران و صغران. ما تو اصول انجیلی باید بگنیم، به یک اشاره. یعنی باید بدانیم کبران، مثلا خمر حرام یا خمر نجس، صغران هم این است که مثلاً این مایه خبر یا این مایه مثلاً آب. و ما یه توضیح رو از کردیم اون چی که در اصول راجبه باب احراز صحبت میکنیم برمیگرده به احراز کبرا این شما اصولاً اصولا ما در اصول وقتی بحث میکنیم بحث ما برمیگرده به اموری که احراز کبراست اموری که احراز کبرا میکنه این اصطلاح هم بشونگیم تمنجز اصطلاح هم بگیم مرتبه تنجز حالا یه تحبیلتون و شعن اصولی مرکبه کبراست اصولا از کردیم شاره حالا این هم محل کرام عرضه. شاره توی احراز کبرا میتونه نظر داشته باشه اما تو احرازات صغرا نه و این بحث عمری نیست ظلم و قبب و حرام و قبی حرم ظلم و عباده اینا نیست یه عمر متعارف و اغلایی شده یک سیره و جاری شده چرا؟ چون مسئله کبریا یک سرش بشاره و اساسش بشاره برمیگرده میتواند شاره خب به نمی گفتن نمیتواند می نظرمون میتواند میتواند شاره تو مقام احراز کبرا قید و قیودی بیاره اما سقرا چون خیلی زیاده بنا میشه همراه مکل مکلل در صغرا بیاد تقریبا یه اختلال نظام و یه همه غیر معقول یعنی غیر مألوفی غیر معقولیه وضع زندگی رو به هم میزنه مثلا مقنن بیاد میگه این مثلا کاغذ یا این کاغذ نیست این یا این مقوا نیست این جوهرش مثلا جوهر خارجی یا جوهر داخلی است که مثلا این برنج یا برنج نیست این گندم یا گندم نیست این این انصافش احراز صغرا اینطور نیست که ولذا ما ارس کردیم اصل اولی در احراز سغرا به عهده مکلفه مکلف به عنوان اغلا اصل اولی اما در احراز کبرا ممکن است شاهه ادخالت میکنم در کلمات و اصولی ما این طور استفاده میشه که در احراز کبرا هم دست مکلفه این آقایی که حجه قفل ذاتی میدونن دنبال این مرنامه هستند. ما چون اغلایی میدونیم دنبال اون برنامه هستن اینا رو ما توضیح دادن توضیح اینجا توضیحات شما مفصل از کردیم بین این دوتا البته هجت وقتی تمام میشه که احراز کبرا و صغرا با هم بشه لکه متعارف اینه به نظر ما در احراز کبرا میتواند مقنن قید بگذاره مثلا بگه شما به قوانی نعمل میکنی که توی یه روزنامه رشنی مجلس باشه اگر قانون رو بدونه از قید این رای اعتبار نمیشه مشکل نداره از هر راهی شما با موندان، دانستین نه، با روزنامه رسمی میاد. این نمی شه غیر بیاره. آ این اصولی ها مثلا چون اخباری ها، آها نگفتن کتاب و سنت بالاتر از روایت اهل بیت باشه، اصولی ها نگفتن نما علم به کتاب و سنت از هر جای پیدا کنن. مثلا باز همین اصولی ها چستی از که خبر واحد حجه داشت، خفتی این حجه ذاتی مثل شکل حجوم مهم اصولی ها بر اخباری ها این بود. حجت علم ذاتیه نمیشه شارع تهدید بیاره ولی ذا روایاتی هم که گفتن قیاس حجت نیست آقا نه هم گفتن که علم پیدا نکنه لگه علم پیدا کرد آسیا هم باشه اون حجت اخباری‌ها از قیاس علم پیدا کردن حجت نیست یعنی ها گفتن علم اینجور نیست که شما دستتون باز باشه از هر راهی باشه ما کلام اخباری‌ها رو این جور و کلام اصولی‌ها رو و ارمام کردیم که حق با اخباری‌ها در این بلزه اگر است سیاث علم هم پیدا بشه علم وجیت نذاره این طور نیست که علم وجیت قابل نه نباشه قابل نفی نباشه قابل نفی قابل این مشکل نداره و عرفی هم هست این ادعایی که عایم میکنن اصولی ها انصافا کلی و عرفی دقیقی نیست ما دنبال علم بریم برای ما بدنا یک حساب و کتاب و جوابتی داره بله مواهشی داره که اصولی ها مطرح کردن توی سقرا درست چرا چون توی صغرا اصولا قانونگذار دخالت نمیکنه، اصولا کارش نیست هم پراکندگی صغرا زیاد بوده و هم اصولا شأن او نیست که بیاد تو این کار دیگه این آب یا آب نیست این به کر رسید یا نرسید دیگه اینا رو نمیاد دخالت توش بکنه این چیزی نیست که بر او توش دخالت بکنه و بله ممکن است در بعد در شعر شرط شت وظیفه‌ای برای انسان قرار بده حالا به هر حال استخposer نویا تا چیلنوا دیدم. چاوسه زویا. نکنه چه یه وام نه ببینید دو بحثه. شاید. یه بحث این است که اگر شاره توی کوبرا تصرفی نکرد به همون راه واقعلی میاد. می‌تونه تصرف بکنه نه میگم نمی‌تونه تصرف بکنه. بحث شد میگن که اگر این شما از خیال این فیزیک شنیدن میگوینه عمل نکنه، فر امروز جاته، تو آسیب. من میگم میتونه، بحث میتواند. در دیگه اینجی که شاره گفته مثل فقط از خصوص اخبار، آیا شاره گفته مثل این که از خصوص اخبار، گفتم نه اینطور نیست اون بحث دیگه این. اما این که نمیتواند یا میتواند، ما میگم تو سوغرای از من که بذم متعارف نیست، اگرالو نیست اما در قرآن هست بحث همین. اما کجا شده نشه اون بحث دیگری من واژه بحث تشخیصش نمیشه. تفصیل. ایشون میگه که یا واسو هو و یه کو الا مایه اثر روح صغرا مثل کل کبرى. ولای اونا به اختیاریت الفعل اینجا یقینی نمیشه بود با یونا باشه. محصود از اختیاریت الفعل که هم صادران از مبدا ال ال به صلاح حالا بخواد صلاح یا فساد همون طرف شده مبدع علم بله مبدع علم به صلاح سوام امکان مختنفی علمی و مصیبه یعنی به عبارت اخراب اون تحریک انسان و تحریک انسان و تحریک ازولاد و تحریک انسان این تابع اعتقادشه نه تابع واقع و سوام امکان مختنفی اعتقاد فردیت من بحث علمی هر دو خطاب سماغ هم در کبرا پنز کرده هم در صغرای شده اون مصیبه فکما انال حرکت خارجیه نحوه ها دلدی اعتقده فریضت هم کدالک الاختیار متعلقون با ها دلدی بخشین فردیت هم با ها دلدی اعتقده فردیت هم یعنی اون آقا فریضت همو شد باشه کبرا و صغرای هست فهوه مشتن لحاظا و امکان مخشوشان و مختلف به و امکان کار او جاهلا او را هاش میگه ه داره. سر عنوان الذي اعت او موجب به تغییرداد به تغییر متعل نمیخواد بلی که من به این شخص خارجی میدم به به اینکه هااش می این باشه. این اعتقاد من تغییرید نمیاده موجباً به متعلقه. را، نه نا ایننما مناء ارادیان من تغییر پیدا که یکون و مشتری ان لحاظ ال غیر مشروط و موثق ان لحاظ ال تغییر حتی لو ظهر القشو و الغناب بر اثر المعامله تا اگر اشو و جنا پیدا شود معامله باطل بشه اگر ناتون باشه عبارتش انجام میشود نظر شد مردم سال و اورلن همین داره که اگر ابتدا کرد به زید این شخص در وجود به زید در نمود زید اینجا بوث باصله دایی باشه نه ایشون ما های دیگه از نیست تا میکیم باطله شبیه اونه داره و تبدیل کسان فلای از خل تحت الاراد شیعون و را الخارج اونی که در اختیار انسان هست همون خارجه تمالای از خل تحت در فعل حسی و حرک الخارجیه شیعون و را الخارج ها نه و خارج فلحرکتون مبتداست نه مبنی بر خبر شده سازه و ها به حرکه ارادیتون منبعثتون ان اعتقاد صلاح فکامتل ارادتون نهر خارج اصلا تمام اون هدفش همون خارجه من اگر اون والا تابع اون باشه و مگر اینکه مثلا چیزی دید ترکه داشته که سهران و اندر موزی رو سراس شد و قد من امکر اختیاریت فعل فی باب تجریه ایسی که گفته فعل در اونجا اختیاری نیست زعمن و انما تعلقت به این اراده بهی الخل لا بیشنا و ما شره به او و هوا خل لم تا به اراده و هوا باطل به ما قلنا خلاصش اینه که اراده این بحث البته این بحثی که ایشون در اینجا جامعه کرده بحث خوبیست آیا تمام موارد از ما هم اون بحث دیگر یه نه اینطور نیست من کلا منتبه باش اختیار، متخلف به بالفعل اراده واقعا به فعل خورده و الفعل متوجهون خارج. فعل هم نیست در خارج وجود داره فعل تبادل خمریه مولد ان الاراده دلا دخیل عنوان خمریه لحت الاراده عنوان خمریه تاثیر نکرده واقع خمریه و کل افعالنا بالقدوم و بالاصل روز شن حاصل به روز شن قدر صبح آثارم اصل و کل به افعال اینا به القدر والآثار بله. خارجیات منبعستون من عوائد نافی ها خب این خیلی ایشون سرکنه هست چار سرکنه هست این خب اشاره یک ازشون طولانی صحبت نمیه تا آراض رسپا اشاره هست که وقتی انسان یک خارج رو میبینه دو راه داره برای مسودش یکی با اشاره میگه این کتاب این نیچنه در که عنوان این بحثی که این عنوان چه مقدار تأثیر داره تأثیر و عنوان چه مقداره و تأثیر واقع چه مقداره خب ایشون اختیارشونه که تمام به واقع خورده به عنوان نخورده بسیار که بولا نمیه گردی داخل بلا دخل عنوان خرمیه تحت اراده و کلو افعال انا بالقدام و ال اصال فعه جاریتون از خارجینا این کولو افعال و ما فعه جاریتون مProfیرین جو اما شما در جواب خبر نمیاد در هذارش ما بچند اگر آن بچند مراد این و کلو افعال اینا مثل من داری پ profitable کدار البده یعتینی اونجا شما؟ ایجا نیمیان جاش نیست و کلو افعال انا, انا بالقد تحییه جمعه این که توش شرکیت توشی رسوشی تحییه جاریتون علال خارجیا. منبعثتون این عقائل نافی ها و من حجز دالکه هی اختیاریتون تون ناثر نافی اعتقاد نافی کبرا اعتقدنا ها و سقرات تبقنا ها هم اختر نافیه ما او فی اهداه ما بله و فیقه علاوظاله لم یکون اشکالون فیشه من الفروه المتقدمه و نظائره ها و منها المقام فکان البیع و واقعا علم خارجی در حقیقت بی بر سر همین مخشوش خارجی این مخشوش خارجی رو به ادار اگر این شد اگر پرسیم مثلا تخلیف ارادی چیزی شد اون وقت مثلا تخلیف خیال بحث اما این باید با این بیانه ایشان صحت معامله باشه با بیانه قبلی فساد معامل نه اعتقاد بنا الغش دهانا الى ایغای المعامله عن المحشوش خارجی فالمعاملتو واقعتون عن الخارج و مستصفتون بالسحن نم لا مزایقه تبقیه این تحقیلی که ایشون فرمودن باید برگردیم به خیار الکی که ال... من الاناوین الکی اشاره ره المسنفی آفرد برد خالا ما فرده اینشانه توضیحی شدیم ببینیم هر درده سه و این ایشون این کرده؟